آنا دوشنبه 22 جولای 2013 صبح صبح زود تام با یه بوسه بیدارم کرد. نیشش جسورانه باز بود. امروز صبح جلسش دیرتر شروع می شد. بر همین پیشنهاد کرد ایف رو برداریم و بریم یه جا بگردیم. اینجا جاییه که ما اولین بار همدیگر رو دیدیم. نشستیم کنار پنجره. زن تو لندن کار میکرد. برای همین خطر رو در رو شدنش با ما وجود نداشت. اما باز یه ترسی بود که میگفت شاید به یه دلیل زودتر برگرده خونه. مثلا اگه احساس ناخوشی میکرد یا کاغذی مهمی رو فراموش کرده بود. یه همچه خیالایی میکردم. آرزو کردم کاشیه روز تنها بیاد و اونو با من ببینه. ببینه و بدونه که موندن تام با اون چندان طول نمیکشه. الان باورش برام سخته که زمانی دلم میخواست اون یه دفعه سر کلش از وقتی مگان کلش شده از من سعی میکنم هیچ جوری از اون مسیر رد نشم. از جلوی اون خونه که رد میشم تنم مور مور میشه. اما این تنها مسیر ما به کافه است. تا می خورده جلوتر از من راه میره و کالسکر رو هول میده. داره بره ایوی چیزی میخونه و میخندونتش. من عاشق این کارم. وقتی که مثل الان سه نفری باهم بیرونیم، مردم رو توی راه میبینم که به ما نگاه میکنن. میتونم ببینم دارم به چی فکر میکنن که چه خانواده قشنگی. این به هم حس برتری میده و بیشتر از هر چیز دیگه ای تو زندگیم بهش افتخار میکنم. من همطور دارم توی حباب شادیم سیاحت میکنم تا میرسیم نزدیک خونه پلاک پونزده که درشون باز میشه. برای یه لحظه فکر میکنم خیالاتی شدم چون اون زنه از خونه میاد بیرون. ریچل از در جلو میاد بیرون و برای یه ثانیه اونجا وای میسه. به ما نگاه میکنه و سر جش میمونه. وحشتناکه. لبخند عجیبی بهمون به میزنه عجیب ترین لبخندی که تو دنیا دیدم یه دهنگ عجیب بود تقریبا و من نتونستم جلو خودم بگیرم یهو خم شدم و ایوا از توی کالسکش قاپیدم ایوا از این کار جا خورد و زد زیر گریه اون به سرعت از ما دور شد و رفت سمت ایسکا بعدش تام صداش زد ریچل تو اینجا چی کار میکنی؟ ریچل اما اون همینجور میرفت تند و تندتر. تر اینقدر تند که انگار داش میدوید ما همونجور اونجا موندیم، خوش شدیم انگار بعدش تام با یه نگاه معناداری برگشت سمت منو گفت بیا، فقط بیا بریم خونه. عصر وقتی رسیدیم خونه فهمیدیم در ارتباط با ناپدید شدن مگان هیپول یکی رو گرفتن. یه یاروی که مثلا اسمش رو از مگان نشنیده بودم رواندرمانگری که می رفته پیشش، به نظرم خبر آرامش بخشی بود، چون هر چیز وحشتناکی رو تجسم کرده بودم. تام گفت، بهت گفتم نمیتونه کاری غریبه باشه، دیدی دیدیم جور بود، نه؟ حال ما حتی نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. اون احتمالا حالش خوبه، احتمالا با یکی فرار کرده. پس چرا کسی رو که باش فرار کرده دستگیر نمیکنن کنن؟ شونش انداخت بالا، حواسش پرت بود. جاکتش رو پوشید، کراواتش رو مرتب کرد، آماده شد که بره برای قرار با مشتری امروز. ازش پرسیدم، ما چی کار کنی؟ نگاه بیروهی به من انداخت در مورد اون ریچل، چرا اینجا بود؟ چرا تو خونه هیپول بود؟ فکر میکنی، تو، تو فکر میکنی اون داشته سعی میکرده بیاد تو باغ ما؟ منظورم از طریق باغ همسایه است. تام ظالمانه خندید شک دارم بابا این ریچل که ما داریم دربارش حرف میزنیم اون حتی نمیتونه ما تحتشو بکشونه رو نرده ها نمیدونم اونجا چی کار داشت بابا اصلا شاید شاشش گرفته بوده رفته درو در اشتپایی زده که یعنی قصد داشته بیاد اینجا سر داد نمیدونم ببین نگران این موضوع نباش باشه درار قفل کن من بهش زنگ میزنم و میفهمم که چی میخواسته به نظرم ما باید به پلیس زنگ بزنیم. زنگ بزنی بگی چی؟ اون واقعا هیچ کاری نکرده. تازگی‌ها هیچ کاری نکرده. مگه اینکه به خاطر شبی رو که میگان هیپل گم شده بود و اون اومده بود اینجا رو حساب نکنی. ما باید به پلیس درباره چند سال قبلش بگیم. دستشو انداخت دور کمرم. آنا، دست بردار. من فکر نمی‌کنم ریچل هیچ ربطی به گم شدن میگان داشته باشه، اما باش حرف میزنم باشه. ولی تو گفتی اگه یه بار دیگه بیا... با ملایمت گفت... میدونم. میدونم چی گفتم. منو بوسید. دستشو انداخت توی کمری شلوارجینم. بیا ما خودمونو با پلیس درگیر نکنیم. من که واقعا این کار لازم میشه. من فکر میکنم الان همون وقته که لازم شده. نمیتونم از فکر اون لبخندی که بهمون تحویل داد بیرون بیام دستمون انداخته بود. تقریبا فاتحانه. ما باید از اون دور شیم, ما باید از اینجا دور شیم.